ایوی بازنگری در تاریخ قلم رو میانی. که این همه بر مطالب شاهنامه تحکید می که شاهنامه کیومرس رو خیلی پیچیده توصیف کرده و با قاطعیت نگفته این شاه هست یا نیزی یا تنها بوده نمیدونم لباس و از پوستشی می پوشتین حرفا از اون سمتن به مطمون کوانتر نگاه کنید چون ببینید فرمان روایان پیشدادی در یشتا صحبت شده ازشون به ترتیب هم آمدن جلو و اینها رو به عنوان یک سری کبی، و یا پهلوان گزارش کردم این کسی که سروده های هشت های مختلف رو نوشته مثل یشت، مثل سابانیاش خیلی از این فرمان روایان پیش دادی کیانی و پهلوان ها و شخصطر راافشون رو که انسان توصیف کرده یکی کویز میاد یک ایزدی خدای ستایش میکنه یک خاص ای رو به یک دشمنی پیروز بشه. نه در اوستان اومده نماد دوره نیستن ببینید نبرد در تاریخ تکرار میشه نبرد نبردها تکرار میشن هیچ شکی نیست اما ببینید نبرد هران دیگه تکرار نشد ببینید نبرد تروا یا نبرد مثلا واترلو دیگه تکرار نمیشه اون یک نبرد بوده ببینید مفاهیمی که تکرار میشن این مفاهیم کلی هستند مفاهیم جزء و خاص تکرار میشن تاریخ امر غیر محتمل و تکرار ناپذیره به نام خدا، با بارز سلام و ادب خدمت هممیهنان گرامی همراهان برنامه پژوهشی ایران ویج در قسمت سی و در خدمت شما هستیم. خوشبختانه از قسمت سی وارد فکت تاریخی شدیم وارد اسناد تاریخی برای اثبات گیرینگی تاریخ قلم روی میانی. ما تا زمان منوچهر اسمی از ایران فعلا نخواهیم آورد و تمام پژوهش هامون و همچنین اسنادمون بر پایی انسانشناسی خواهد بود. انسانشناسی که اساسش بر قلمرو میانی هستش و تقریبا تمام های ژنتیکی و حتی زمان هم نشون میده که این قلمرو میانی که فلات مرکز ایران هم مرکزش بوده. گهواره و مادر تمام های بشری هستش تمام مادر تمام های بشری هستش و این هیچ تردیدی وجود نداره و کمتر آدم مقرزی میتونه اینو رد بکن اگرم رد بکنه از با مسائل غیر علمی و اینها هستش دو سه قسمت هستش که در مورد کیومرس میخوایم صحبت بکنیم و داریم صحبت میکنیم و در مورد کیومرس صحبت ها داریم جناب آقای ایران مهر در قسمت گذشته وارد استورهای های اژه ای شدند منظور از اژه دریای اژه هستش در آسیای صغیر و ترکیه کنونی خدمت دوستان گرامی عرض بکنم که اساساً این قاره ای که ما توش زندگی میکنیم یعنی قاره آسیا و اونور کشور ترکیه کنونی همسایه‌مون یعنی اونور شهر استانبول یعنی اروپا در قدیم و در دوری باستان به سواحل اژه گفتن ساحل شرقی اژه آسیا بود ساحل غربی اژه اروپا بود اروپا کلا یه دشتی بود تو بالکان دشت تراکیه هم میگفتند که در سواحل غربی کل کلا اروپا به اونجا میگفتند و اینجوری نه این بعدها بود که بشر در واقع پیشرفت کرد بعد از معاهد وستفالیا که دولت ملت ها شکل گرفتن، قارره ها هم به وجود اومد و به عنوان یک چیز قراردادی الان یعنی چیزی نیست که مثلا از اولی اصالتی داشته باشه این اسامی، بلکه از دید حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل اومدن این قارره ها رو نام بردن و اساساً حتی خود قاره اروپا یک قاره به حساب نمیاد چون از لحاظ جغرافیایی تعریف قاره رو به حساب بیارید، قاره اروپا بخشی از اوراسیا هستش. با این کاری ندونیم. جناب اینان مهر وارد اسطوره های ایژی شدن. در اسطوره های یک شخصیتی هست به اسم گایا یک دالی هست حالا از دید دانش تحلیل گفته. ما بگیم یک دالی هست به اسم گایا که ایشون فرمودن که این دال گایا شباهت های زیادی با مفهوم کیومرس در تاریخ ایران کهن و اسناد ایران کهن داره لو این بحث سه شما تکمیل نشود لطف کنید این رو ادامه بدید. هاش می کنم درود بر شنوندگان گرامی. بله من ترجیح میدم این بحث رو یه مقدار تبیینش کنم برای اینکه ممکنه بعضی‌ها بشنون بگن این یک گ توی گ اومراتای کیومرس پیدا کرد یک گ هم تو گایا دید این دو رو چسبون به هم مثل کاری که خیلیا میکنن. در صورتی که بااد نسبی نگاه کرد نه اینطوریه که هر چیزی شباهت کمی دیدی بین دو چیز رو بتونی به هم واسط کنی نه اینطوریه که چون یک ادع این کارو میکنن پس هیچ چیز دیگه به هیچ چیز دیگه ربطی نداره نه اینطوری نیست اگه شما ادعا میکنین دو چیز به هم ربط دارن با تمام اون زمینه و بستر و زمینه کار رو تشریح کنین توضیح بدین دلایل رو بگین به اسناد مراجع کنین ما درباره گایا گفتیم حالا من چند تا از نشانه دوباره میگم بعد مقایسه میکنیم با بعد این گعوهای دیگر رو هم چند تا نمونه من میگم این ریشش این گعو گعوش اروانه در اوستا خدمتتون بگم که به معنای روان آفرینش اروان روان گعوش هم آفرینش معنا شده میشه گفت که تار و پود نظام هستی و هنجار هستی گعوش اوروانه اون چیزی که تو اسکلت هستی رو تشکیل میده و این هستی و گیتی رو سر پا نگه میداره و برنامه‌های توش رو به هنجار و نظمش رو پایش میکنه در فرهنگ ایرانی بهش میگن گاوش اوروان پس اینکه اون گاوش یا گاو پس یک یعنی یک آفرینش توش همونی که عرض کردم دیگه حالا جمعه های مختلفی میشه دربارش گفت این که اصلا ریشه گاو حالا اون گایا رو من میگم اعمالش بذ رو بررسی میکنیم ببینید گایا چیکار میکنه در اسطورهای ایجی ای؟ به خودی خود پونتوس یا دریا رو و همچنین اورانوس یا آسمان رو به وجود میاره بعد خودش با اورانوس ازدواج میکنه و فرزنداش شامل تیتان ها شش پسر و شش دختر و اولین نسل از غول های یک چشم یا سیکلوپ ها اله های انتقام گیگانت ها فرزندی صد دست به نام هکاتون کایر رو به وجود میاره ببینید داره هی زاد و ولد میکنه پس از جدا شدن زمین از آسمان گایا بازم فرز فرزندان بیشتری به وجود میاره که این بار از پدرشون پونتوس بوده یا دریا این معنیش روشنه دیگه فرزندانی بیشتر داره از طریق پونتوس تولید میشه گایا یا گعو یا آفرینش داره وسیله پونتوس یا دریا فرزند به وجود میاره یعنی آفرینش اولیه در دریا بعد مثلا از همین فرزندان پونتوس یک ها نریئد ها پریای دریایی ان دریا پری هستن مثلا مادر آشیل یک دریا پری بوده تا اوماسو حالا اینا بینا کاری نداریم گایا بعدن فرزندان دیگری هم از برادرش تارتاروس داره شامل تایفون و یک اینا که بعدن اینا دشمنای زئوس میشن حالا این یک استور است خب ببینید پس گایا دائم در حال زایش, زایش. حالا من اونجا میرسم گاو یعنی ح لاتینش ژئو دیگه. بل. یعنی زمین. درست. ژئو ارهس نها. ژئویی که از با گء همسانه، با گیه همسانه. گء و ژئو. که ما او گرافی هم داریم، ژئوگرافی. بل. بله ژئوگرافی، فیزیک بل. این ژئو اون افسانه‌ای هم که زمین روی شاخ گاوه رو توجه کنین، یه افسانه خیلی کوهن ملل هست که زمین رو شاخ گاو هستش میگن وقتی زمین از این شاخش برمی‌داره به اون شاخش می‌ذاره، زمین لرز میاد یک افسانه خیلی کهنه. اما ببینیم باز زمین روی شاخ گاوه. آه. باز پای گاو وسط. حالا این داستان گاو خیلی مفصل ما اون رو می‌گیم. حالا شما ببینین همین کارا رو درباره گاو مرطای ما کیومرس را اهورامزا بیا فرید و او مدت سی سال در ها به تنهایی زندگی کرد. این همون سی معروفی که گفتیم و هنگام مرگ نطفهی بداد که آن را به نیروی خورشید بپروردند و در خاک نگه داشتند. پس تخمه کیومرس برای زایش بعدی از کیومرس میمونه. پس از چهل سال ببینید چهل معروف مثلا زههاکم به یه دوره‌ای میرسه که میگه که حالا که چهل سال مونده تو خانه‌ام از حکومتش یه کار دیگه ای باز میکنه این چه دیگه چهل آین مهر داریم و این 40 هم خیلی معروف پس از چهل سال از محل آن نطفه گیاهی ریواس دو شاخه روید که در مهرگان از آن دو شاخه ریواس از آن دو شاخه ریواس به اصطلاح مشی و مشیانه یا مهری و مهریانه اولین زوج به وجود میان پس از 50 سال ازدواج میکنن و ثمره آن تولید یک جفت نر و ماده شد که از آنان باز دوباره هفت پسر و هفت دختر متولد شدند و می‌بینید مثل گایا که داره فرزند به وجود میاره و اینو دائم دارن هی جوامع جدید رو جمعیت های جدید به وجود میارن می‌بینید اینا داره این هم دارن هم هفت تا هفت تا شش تا شش تا حالا اون 6 تا 6 تا این هفت تا هفت حالا این سند این جمله که خوندم فرهنگ پهلویه به نقل از بندهش. ببینید پس ما که میگیم اینا شهاههد دارن اعمال و کاراشون هم تو استور شباهت داره حالا ما از این گاو زیاد داریم دیگه. ما چهرختر یا صورت فلکی گاو داریم یکی از اون دوازده نه. تا گوه گاو برمایه فریدون رو پرورش میده. این آQ مرس از گاو جدا نمیشه یعنی هر جا شما ببینید بینید گاوش هم هست حتا به امررا گاوش میمیره این گاو گاو چارپا پا نیست فریدون با گرز گاو سر کنگدج رو فرو میریزه. ما همین واژه رو به اصطلاح گاو یا کاو سی او دبلیو در انگلیسی یعنی گاو. گعو سپند یا گوسفند این گاو سپنده که اینو قربانی میکنیم ابراهیم یک گوسفند یک گاو سپند قربانی کرد. کرپنها که این واژه کرپن بعد معربش میشه قربان یا قربان. کرپنها گاو قربانی میکردن ماتادورها در کنار دریای مدیترانه دقت کنید تمامی اعمال در شمال و جنوب مدیترانه هست مم. کرانهای مدیترانه ماتادورها گاو بازی میکنند نگارهای قار لاسکو در فرانسه گاوه یهودی گوساله سامری دارن هزار تا دا ایوون هست گوساله سامری دارن در داستان بنیر اسرائیل سوری بقره وقتی اون جوون میمیره یعنی که یه گاو داره. گاو رو اندامشو میزنن و روانه ای گوش نماد آتلانتیس یک گاوه نر بوده که مجسمه شو وسط جزیره ساخته بودن مسریا اون موجود مقدسشون شون گاوه آپیسه هندوها گاو رو میپرستن اینا همه تو قلم روی میانیه اون نگاره برجسته تخت جمشید سرستونا اکثران گاوه سر گاوه اوستا رو دوازه هزار پوست گاو، نوشته شده بوده در زمان هوشنگ مردم با گاو سرشوک به شش کشور میرن حالا من اینقدر میتونم به شما بگم که اصلا وقت برنامهم تموم با... بشه پس این گاو رو ما خیلی ساده سم... نگیریم این خیلی مفهوم داره بله حالا شما توی قسمت فکر کنم 33 من فرمودید که ما نبودن یک زبانشناس توی برنامه واقعا احساس خواهد شد حالا ما میتونیم هلتاکو همین تا این کلمه گیتی هم ممکنه از همون اینو باید یا یا نگاه کنیم پجوش استاجونه دی رو ببینیم دکتر آموزگارو رو ببینیم ببینیم گیتی رو چه معنا کردم من ام. ندیدم اما تاجهه که من پجوش تونستم بگم خدمتون بگم اینا بود و اون نمونه چیزشم گفتم لاتینشم گفتم که خب جی او اون داستانا بعد خدمتون بگم که حالا یک قسمت از است که صحبتش شد در کرده 24 بنده 86 ببینید آفرینش در متون ما یک سلسل مراتبی داره. این سلسله مراتب رو ما اینجا می‌بینیم ببینید فروسی رشن راسترین ایزد زاده رشن که یکی از ایزد ایزدهای ایزد ایزد ایزد ایزد اون جهانه اینو میستایه خب بعد مهر فرا... چرا... فراخ چراگاه رو میستایه مهر رو میستایه پرتوهای خرشید رو داره میستایه بعد منصره ورزاوند رو بعد نگاه کنین به ترتیب آسمان ببینین گایا اول چیا رو به وجود آورد دقت کنین اورانوس و پونتوس رو حالا اینجا نگاه بعد تو بنداست چه فروندیاش فروشی آسمان رو میستایه بعد آب رو میستایه بعد زمین رو میستایه تارتاروس بعد گیاه رو میستایه بعد گاو گع... گاو رو میستایه یعنی جانوران بعد گیه رو میستایه این کیومرس رو بعد دو جهان عشوون رو میستایه ببینید شما هر جا که نگاه کنین توی اسطوره های ما حتی تو امولوژی هم دیدین که ترتیب آفرینش اینه شما تو کتیبای دارویش هم نگاه کنین اون میگه اول آسمان را آفرید بعد زمین را آفرید بعد بعد بعد همش ترتیبش همینه بعد در بند هشتاد و هفت میگه که فروشی گی و اشون رو را میستاییم نخستین کسی که به گفتار و آموزش اهورا گوش فرا داد و از او خانواده سرزمین های ایرانی پدید آمد این متن فروردین یشته بعدش دیگه دنبالش میگه اینک بخشایش و فرورشی زرتاشت سپیدمان عشبان رو میشه تاییم و دیگه بعد ستایش میکنه زرتاش رو ببینید پس این, این که یعنی تقریبا میشه گفت جایی که مشخص از کیومرس نام برده عویستا همین فروردین یشته و در بند هفت و و هفتش میبینیم که اول آفرینش رو میگه و بعد اینجا رو من نمیدونم چقدر وقت دارم خودت دقیقه بعد حالا شما ببینید ما این که متن اوستا ما متن شاهنامه را خوندیم متن اسطوره ایجیرا هم خوندیم. حالا می‌خونم یک سند دیگه که ما تو برنامه برابری خونده بودیم. خیلی سریع می‌خونم که شاید توی چند دقیقه برسم این چند خط رو بخونم. عزیزالدین نصفی در ده. کشف الحقایق آنگاه از عناصر و تبایه عروج میکنند و به نبات میآیند. و اول صورتی که از صورت نبات پیدا می‌کنند صورت تهلب یا خزه است. و این تحلب گیاهی سبز است که در آبها پیدا می آید و به مراتب بر می و صورت نباتات و اشجار پیدا می کنند تا به حدی که شجر به حیوان نزدیک شود و همچون درخت خرما و چندین هزار سال دیگر در این مرحله می باشند و اول صورتی که صورت جانوران پیدا می کنند صورت خراتین است و این خراتین کرمی سرخ و دراز و باریک است که در گل و زمین آبناک بود و به مراتب بر می آیند و صورت جانوران به تدریج پیدا می کنند تا به حدی که حیوان غیر ناطق به حیوان ناطق نزدیک می شود همچون بوزینه و نسناس و چندین هزار سال دیگر در این مرتبه می باشند آنگاه از حیوان یعنی از اون نسناس به انسان میآیند و اولین صورت که از صورت انسان پیدا می کنند صورت زنگیان است داره نشانی سیابوس آفیقار, سیابوس می آفیقار می نصفی حدود 400 سال پیش از داروین 600 سال 600 سال پیش از داروین 650 سال پیش از داروین خب این یه سندی دستش بوده که حالا از کجا آورده بوده سند ایرانی بوده اینو بذارش به این ترتیب تو کشف الحقایق آورده خب زمانی که ما یه گزارشی از کیومرث تو شاهنامه میبینیم ببینید خودش کی گفته فردوسی گفته که کیومرث 3000 سال پیش بوده خیلی رک میگه میگه ندارد کس اون بیاد به میگه ندارم سندش دستم نیست مثل همون کجا که از جان کوسخانی همی، جزین نیز نامش ندانی همین هیچ اشاره ای نمیکنه، فقط میگه اینقدر دوره که ما هیچی ازش نمی دونیم، سندی به دستش رسیده بوده و اینها رو به نزد برده. در آورده، خودش میگه درباره متن متنی که به دستش رسیده بوده شاهنامه ابو مسعودی میگه گذشته بران سالیان دو هزار،, هزار. گریدون که برتر نیاد شمار میگه حالا ما ای دو هزار سال از زمان و اون موبدای حساب کنیم از امروز میشه سه هزار سال پیش اه. اگه از زمان متون پهلوی که به دستشون رسیده بوده حساب کنیم میشه حدود پنج هزار سال پیش پس یک سند چارپنی هزار ساله داره به دستش. ما میگه که یک کیومرسی بوده که ما تو اون سنده چارپنی هزار ساله بازم نشانی از کیومرس نداشتن اه. میگه ندارد کسان روزگاران بیاد در خیلی رک گفته بود هرابارین مثلا ما شاهنامه رو یک سند هزار ساله‌ای بدونیم که حق نداره درباره گذشته حرف بزنه این ستمه ما اگه فرگردی بندید یک اون ونداد آقای فیروزی گزارش کوچ سیه رو 5000 سال پیش میدونن من اشکالی نمیدونم مثلا میگم فرگردی یک اون ونداد کوچو گزارش نمیکنه حالا اگه 8500 سال پیش یادشون بوده نوشتن خیلی ممنون اما اون کوچ نیست آفرین چه سرزمین‌های ایران شهره بنابراین یادشونه مون تا جزئیاتش یادشون نیست نادر کسان روزگاران یاد یعنی که کجا که از جهان کوس خانی همین جزی نیست نامش ندانه نام. همین میگه یک کلمه فقط یه نام میدونیم کوس و سلام دقیقاً حالا این کوس کجاست چیه خود خب این وظیفه ماست دکتر از تطبیق اسناد پیدا کنیم بنده خدا سندی که دستش بوده نمیتونه سر دروغ بگه الکی میگه نمیدونم دیگه یعنی حتی حت نمیدونه 5000 ساله ها هم نمیدونه این کوس کجاست اما میدونسته که اینا پلنگینپوش بودن بله. ببینید ما هم مثلا اینا میدونستن که آقا بافندگی و داری که پاشه میبافند اینا مثلا مال از ازل نبوده اینو میدونستن می نیاکان خیلی گذشته پوست جانوران تنشون میکردن اما دیگه جزئیات رو نمیدونستم. نمی خیلی متشکرم. شنوندگان گرامی این متنی که جناب آقای ایران مهر از عزیزالدین نصفی از کشف العقای خواندم یه بار توی برنامه برابری هم خونده بودن. بله. این دقیقاً اگر یه بار یه گوش بدید، برگردونید گوش بدید می‌بینی که اصلاً دقیقاً همون نظری داروینه. داروین هیچ چیز اضافه نگفته. حتی اتقوان کمتر از اونم گفت. داروین در واقع تنوع انوار رو گفته که خیلی اتقوان پیش پا افتاده‌تر از اون هستش و معلوم هستش که از عزیزالدین نصفی به عنوان نشمانه ایرانی به اسناد خیلی پیشرفته تر و علمیتر دسترسی داشته اسمش هم مشخصه از, از نصفی از نصف که الان تو اوزبکستان که شهر تاجیک نشین هستش به اسم نصف قرشی اونایی که فوتبال یا نخشب رو هم هست که ما اسم نقشب هم داریم معروم محمد نقشب از شخصیت های ایران معاصر هستش و اونایی که فوتبال رو دنبال میکنن مثلا تیم نصف قرشی اوزبکستان حتما شنیدن که با تیم های ایرانی هم یا نصف کارشی درسته بده. که یک اسلاید تاجیک فارسی هستش اون المقنع تاریخی هم که ما تو زمان اسلام داریم اونم از همیشه شهر دقیقاً از ازش بعد خیلی متشکرم از جناب آقای امام جناب آقای فیروزی گرامی از به حضورتون که واکنش شما رو میشنویم باز هم خب شما هنوز هم معتقد هستید که با توجه به اون تطبیق تاریخی که در مورد دوران کیومرس و دوران کی گشتاسب انجام دادید تقریبا یک سال تاریخی نسبتا دقیق رو برای کیومرث فرمودید و باز هم از نظری خودتون با توجه به اسنادی که با مستند میدونید و استدلال می‌کنید دفاع بکنید فرضاً به خدمتون که ببینید وقتی ما درباره پدر و بنیانگذار صحبت می کنیم این در برگیرنده خیلی از داستان ها شما نیا کنید به آخرین بنیانگذار در واقع بنیانگذار آخرین دودمان باستان را عردشیر بابک ببینید از یک شخصیتی که ما سکه ازش داریم نقشش رو داریم کاخش رو داریم بله و نوشته رو به صورت مستقیم کارنامه داریم کارنامه عردشیر چه شخصیت افسانه‌ای در اون کتاب کارنامه با بابکان ایجاد کرده بعد خودش یعنی انتظار نداشته باشید که از پدر و بنیانگذاران کهن‌تر شما شخصی... یک شخصیت تاریخی حقیقی مثل خشایارشا ببینید اینکه گذار آخرین دودمان هست شما همیشه به این دقت کن هیچ وقت روی داروش افسانه ندیدید اون چنان من چیزی سراغ ندارم ولی راجب کوروش هست حتی هرودوت می که من سه روایه راجب کروش می دونم که بله. منطقی تایین از زید خودش رو می گذارم و نمیگه من راجب داروش در فلان نقطه سه روایت می شنبن. اصلا از این حرفا نمی زنه یکم دقت کنیم حالا شما راجب کسی صحبت می کنید که نه تنها بنیانگذار یک دودمانه بلکه بنیانگذار یک حاکمیت به یک کشور هست این در یونان هم دیده میشه این در چین هم دیده میشه. عین همین داستان کیومرس که از او و بدن او میخواد آفرینش و نسل بعدی بشر پیاده بشه عین همین در چین ما داریم عین همین داستان هست اونجا میگه انسان نخستین هست با اجدها و لایک پشت و اینا میاد زمین و شخ میزنه میفته میمیره از تدسیه بدنش چیزای مختلفه وجود مید این همین شما در چین میبینید ولی قضیه اینقدر ساده نیست که حالا ما بیایم یک بعدی به خاطر چند تا یک بار قضاوت کنیم که کیومرث نماد نخستین انسان یا پدر مثلا مردمان ایرانی است در همون متونی که ما مثال میزنیم ازشون مطالب دیگه‌ای هم وجود داره اینجا دقت بفرمایید مثلا یک نمونهش مسعودی بله میگه خیلی داری از کیومرث انسانی صحبت میکنه این پدر پدری است که انسانی است میگه که چیزی که مردم این روزگار را وادار کرد پادشاهی بیاورند و رئیسی نص کنند این بود که دیدند بیشتر مردم به دشمنی حسد ستم و تعدی خوب, گرفتن، خوب کردن و مردم شرور را جز بین به صلاح نیارد عین همونی که ارداد داره واسه یه میگه سپس در احوال مخلوق و تربیت تن و وضع انسان نفلان نگریستن و دیدن که در ساختمان هستی تن و فلان و فلان بدانستن که مردم جز به وسیله پادشاهی که انصاف ایشان کنه و موجی ادالت باشد و به اقتضای عقل مردم حکم براند بر راست پس به نزد کیومرس شدند و گفتند تو سرور ما باش همون ای که برای دیاکو پیاده میشه برای کیومرس داره پیاده میشه حالا این مسعودی, مسعودی نسخه گفتگو م... دیده و میکنم. نام مرس و میکنم. ازخان میکنم. ازخان میکنم. ازخان میکنم. آیا مسعودی خب شما استناد میکنید به مروج الذهب مسعودی آیا مسعودی هم اون تاریخ زمان و مکانی که شما گفته رو هم در واقع پشتیبانی میکنه نظر ایشون اصلا خیلی از این متون اسلامی که زمانو بر اساس تورات دارن میدن مثلا میگن کیمرز موازات مثلا فلان فرزند از آدم بود اونا دیگه دارن زمان دیگه میکنن چیزی که برای من مهمه تفسیر اون شخصیت کاملا از سنتی دارن پیروی میکنن که این شخصیت رو دارن انسانی و حقیقی و تاریخی بحث میکنن این پادشاه و بله نوحسین پادشاه همیشه می تو اسطوره ما در همین متون خواهیم دید که همین متونی که مثلا میگن او زمان شاهنامه کسی نمیشناخت و اینها میان جلوتر میخوان راجع به پادشاهی صحبت کنن چقدر زمینی دان صحبت میکنن حالا من اشاره میخوام کنم به این مسائل ای چند لحظه صبر بکنید ارزم به خدمتتون که این قضیه کیومرس و عرشیر بابکان خیلی شبیه هم هست دو تا یکی خیلی که و یکی نزدیک هر دو دوچار یک داستان و چیزی که عرشیر بابکان رو نجات داد نقشاش بود و نویشته هاش و این اونم رفته بود هم برای که سای دیاکو اومده حالا وضع کیومرس و دیاکو خیلی بدتره ببینید راجب کیومرس ما همین قضیه مشی و مشیانه رم حتی به صورت حقیقی و تاریخم داری تو متون که اینو حل کردن قضیه چی بوده و چرا اسور الباقی میگه گزینش کیومس از سوی مردم به فرمان روایی آثار باقیه بروجا هم حالا درگیری با سیاهان منطقه ارزوردی یکی از دو دیوهای سیاهی است که در شما تاریخ کهن برخور بود اکثر دیوان سپیدند این کدوم سناده آثار الباقی صفحه 155 شاهنامه تبری و هستش که با اینها برخورد این خیلی جالب یعنی سیاه بوست های تو این منطقه بودن با نشون میده که دراویدیان ها این منطقه با انسان شناسی هست این دراویدیان هایی که الان روز در هندستان میبینین قبلا تو ناهی سند بودن که بعد آریایی هایی که رفتن بهن اینا رو زال قبل. این قبلتر شمالتر بوده و اینها نشون میده این کیومرس اینا رو که چون پسر کیومرس کشنده سیامکرو در عین عبادت دی و بعد میام انتقام میگیره دقت کنیم ارزور یک دیوه ها, ها. بعدا من یه نکته در این باره خب حالا اینو اصطلاحاً مثل بربر ها این چیزاست بعد یادداشت بفرمایید مسو موارد این خیلی جالبه ابن بلخی یاف شدن دو کودک یتیم و به اوته گرفتن سرپرستی آنها به نام مشی و مشیانه یعنی حتی ببینید پایه داستان چی بوده و بعد تا این فلسفه بافی و اینا رو تطبیق به داستان های کرده دندعقب قضیه نیست یشو بگی که حالا اینا دو تا ریواس بودن تبروش بدون انسان خب این کشته شدن سیامک مشخصا که کیومرث یه فرزندی داشته به اسم سیامک کشته شد این اینو دقیقاً دو شاهنامه دو شاهنامه فارسی فارسی یعنی این تو اسناد اسلامی که در اینو پشتیبانی نمیکنه اسناد اسلامی در تبری هم این هست ببینید نبرد کیومرسیان گیومرتیان گیو به فرماندهی سیامک با سیاهان به فرماندهی ارزور و کشته شدن سیامک حتی شاهنامه میگیره جنگی باهم کردن بعضی اسناد میگه این در عبادت کشته شد دو تا روایت هست نبر دوم میون کیومرسیان به فرماندهی کیومرث و هوشنگی که به دنیا اومده و بالغ شده چهارده 15 سال بیست سال زندگیش گذشته با سیاهان به فرماندهی ارزور و کشته شدن ارزور شاهنامه یعنی کاملا داره یک حادثهی از زمین مها که امروز مهابهاراتا رو گوشن جلوشون و میگن که این داستانی که توش نبرد خدایان شرکت میکنه این ایلیات این خدایان رو گواشن کنار و نبر رو دارن حقیقی میکنن و تاریخی و جاشم دارن مشخص میکنن بوس و حددان تخمین میزنن زمانش رو زمانش میزنن و خیلی جالب اون داستان های بلخ و بلخ هست یه درون برای شرکت کردن و اون رو پادشاهی بلخ میدن به طرف پچه های اسکرریپشنون بشون پچه های باشکوه کوه، هیچکن باچه های موبات نیست همون داستان ها و قضیه ها تو بطونه ما هستش بله عرض کردم کیو مرز مثل اورفه دوتا شخصیت داره نخستین انسان میشه این پدر ایرانیان هست بیرونی رو میگه میگه ایرانی اینو پدر خود میدونن داستان حضرت آدم رو قبول ندارن این رو پ... چیزی که هرالدات واسه میگه واسه پدر میدونن یعنی نباتاستم به واسطه ما یک بودی بریم جورو کیو مرس اسوری شده مذهبی و کیو مرس تاریخی که ما پیداش کنیم. بله خیلی متشکریم توازاتتون هم کامل بوده فکر کنم حق مطلب هم ادا شد این در واقع چیزا از ارزم حضور خدمتشان اندگانی گرامی قسمت 38م ایران وایچ هم اینجا به پایان میرسه شما رو تا قسمت 39 تا آغاز قسمت 39 به ایزاد یک تا پاک میسپارم خدایا رون نگهدارد.